فل این اینجا رسیدید مقصور همونهایی که آخرشون الف لازمه بود فتوه مصطفى مستدعا عصا رحا امسر زیادی آورده به خاطر اینکه علت داره چون میخواد بگه اگه کلمه سه حرف داشت داستانش جدایه با کلمه که چار حرف یا بیشتر از چار حرف داشت متواجه هستید خب مفرد فتوه مسانداش میشه فتوهیان جمع مذاکر سالم نداره همون چیزی که دقیقا در دست قبلی گفتیم چون گفتیم هر کلمه نمیتونه جمع مذاکر سالم داشته باشه مصطفا مصطفیان مصطفى، مصطفون یا حس شده بعدا در قواعد میگه مستدعیان مصطدعان عصا اصوان جمع مذاکر نداره سالم رحا رحیان خوب حالا بیایی در قواعد مقصور یسنه المقصورو مصنه می شود تشمیه می اسم مقصور بزیادتی الف و نون فی حالت رف با اضافه کردن الف نون در حالت رف ماننده فتو فتویان فتو فتویان فتو ویا و نون حالت النسب والجر ویا و نون در حالت نسب و جر علا اسوین علا اینه خیلی ساده هستن معقلب الالف یا ان خب نقطه اینجاست تا اینجا اینه خونده بودش معقلب الالف یا ان یا دقت داشته باشید با تبدیل کردن منقلب کردن الف بیا انکانت رابعه فساعدن اگر اگر اگر اسم مقصور حرف چهارم یا بالاتر از چهارم بود مانند کلمه فتوا که فا و تا و, و یا الف حرفه چهارمین حرفه در مصطفی چندمینه یک و دو و سه و چهار پنجمیه میگه در کلماتی که الف اسم مقصور در ترتیب چارم قرار گرفته یا بالاتر از چارم، یعنی پنجم و ششم. اینجا میگه زمانی که بخواهیم مصنا درست کنیم، علت تبدیل میشه خب در مسنّه همی کار شده فتوا فتویان. دیگه نمیگیم فتوا فتواان بلکه میگیم فتوا یان. می علت و تبدیل چی می میکنیم در یا می میکنیم. در مصطفی هم میگیم مصطفی یان. پس میگه و معقل بالالف یا ان با تبدیل کردن الف به yeah. یا انکانت رابعه فصائدن اگر الف چهارمین حرف یا بالاتر بود و ردها الی اصلها انکانت ثالثتا و برگرداندن الف اسم مقصور به اصلش اگر در سومین رتبه قرار گرفته بود مانند عصا مانند چی سا اصا اصلش اصاوه بوده خب خب دقت کنید حالا که میخوایم مسنداش کنیم چون این سه حرفیه یا به عبارتی دیگر علف اصا در سومین حرف قرار گرفته در چهارمی و پنجمی قرار نگرفته علف و دیگه اینجا تبدیل بیانه می نگاه میکنیم که اصلش که بوده به اصلش برمیگردونیم که در مسنداش اصاوان که میشه چی؟ عصا اگر سومین حرف قرار گرفته بود اسم مقصور خب در عصا الف چندمین حرفه سومین سو بله اگر اسم مقصور مثل الف در سومین حرف قرار گرفته بود عین یک حرف فا دو الف چندمین میشه اگر سومین قرار گرفته بود الف به یا تبدیل نمیشه در اسم در مسنا بلکه به چه تبدیل میشه؟ به اصلش نه به واب نه به اصلش اگر اصلش واب بوده به واب اگر اصلش یا بوده به یا این دو حالت تو داره اندره. مثلا مانند رها مانند چه؟ ولی یک چیز سادهی کشمت بدونید اصل این واب بوده یا یا اگر با علف دراغ نشته بود مثل اصلا بدونید اصلش واب بوده اگر با این علف الرحا نوشته بود بدونید دو که اصلش کبرا بدونید دو که اصلیسیا بوده این آره اگر مثل اصلا اینجا دونید اصلا با الف نوشته شده اگر با این الف نوشته شده بود اصلش واوی بوده اگر با این الف الرحا, الرحا نوشته شده بود اگر با هر دو نه کی گفته بیت مکسور نیست پس چه ممدوده؟ کی بیت گفته؟ نه که علی هر دو تا مکسوران. بحث نکنید چرا پس بهش میگن اسم مکسور؟ چرا کجای دنیایی؟ من خدا علی آره نوتری نوشتارشون فقط تاغ میکنه بس تمام شد رفت املایی بس. هر دو تا الف مکسوران. ممدوده رو میگن که بعدش حمزه بیاد مثل قراء خب بیایید برگردید پس اصا اگر علف کلمه مثل اسال نوشته بود مثل دنیا اگر مثل دنیا نوشته بود بدونید که اصلش واق بوده ولی اگر مثل کبران نوشته شده بود بدونید اصلش بوده یا بوده خب این پس یه ای قایده جالبی در رابطه با مستان نگفت بحثی میگود که ما نگاه میکنیم که این اسم مکسور ما سه حرفیه چهار حرفی یا بالاتر اگر سه حرفی بود و الف مقصوره مسلمه در حرف سوم بود ما نگاه میکنیم که اصلش چی بوده اگر اصلش واو بوده در مصنعونو تبدیل به واو میکنیم مانند عسا عوان اگر اصلش یا بوده در مصنعو تبدیل بیاش یاش میکنیم مانند رها رحیان ولی اگر کلمه چهار حرفی یا سه حرف بالاتر بود منظور این است که مقصوره در ترتیب حروف حرف چهارم قرار گرفته بود یا بالاتر اون موقع ما در مصلاح ساده ساده میاییم الف شش تبدیل بیشتر میکنیم، بیان میکنیم معنی از مصطفی که میگیم مصطفیان خب، اما قاید 154 و یعنی جم، جم مذکر سالمه. یجمع المقصور جمع مذکر سالمان با زیادت وابن او یا انب فی آخره جم بسته میشه اسم مقصور، جم مذکر سالم با اضافه کردن وابنون یا انبون. یعنی زمانی که مرفوب شه وابنون اضافه میکنیم، زمانی که منصوب یا مذکور شه یا ونون. ما حصف علیفه با حذف کردن علیفش در جمع مذکر سالم علیف مصطفى مستفون هست این غاب که جمع مذکر هست علیف کجا رفت در مصطفى مصطفان حصف شد پس در جمع مذکر علیف شی می شود حصف می شود بله در اسم مقصور زمانی که میخوایم جمع مذکر سالم ببندیم در جمع مذکر الف چی میشه حس میشه و کجا رسیدیم خوب و ابقاء الفتحه قبل الواوی او الیاع و باقی و باقی و باقی ماندنه فتحه قبل از ووو یا یا منظور اگر مرفو بود قبل از زواف چی داره فتحه داره اگر منصور یا مذیرون هم بود باز هم قبل از زیاد چی داره فتحه داره. قصر و زمان خیلی فتحه داره نه ما در بقیه جمعا قسره داره ما اینجا به خاطر این که بیانگر حس حصف الفه حسش نمی کنید مثلا در مسلمین خب قبل از زیاد چی داره داري. ولي در اسم مقصور كسر انا مستدعون مستدعين در حالة ناس ميجي مستدعون در حالة رأس مستدعين در حالة بالي. وين حالة <هالتي> رأس ايش صد وفنج وفنج يجمعوا المقصور جمع موانس سالما بزيادة الف وطاء في آخره اسم مقصور جمع محنس سالم بستنی شاید با اضافه کردن الیفوتا در آخرش و یتبعو في جمعه مطبعا في تثمیته و قواعد در جمعش میآید که در چیش بود در مصنعش <متشفایاتو> <متشفایاتو> بله شما شما شما در مصنف چه احکامات و قواعد رو خوندید در جنب مؤنث همون قواعد میان مثلا چطور مثلا در فتوا زمانی که ما اینو بردیم به مصنف علف تبدیل به چه شد در جنب مؤنث من میشه میشه فتوایات بله ولی روی الف چه احکاماتی جاری میکنیم؟ همون احکاماتی رو که در باب چه جاری میکردیم؟ تصنیه همون قوائدی رو که در؟ بله مثلا عصا عصارو در مساننا میگفتیم عصوان در جمع مواننس هم میگیم عصوات در جمع مواننس میگین چی؟ عصوات رحیات همین بابا این آره میگه همون قوائدی رو که در تصمیه جاری می‌کردیم اگر بخوایم از این اسم جمع مؤنث سالم درست کنیم همون قوائد مستنه بیاد یعنی چی؟ یعنی علیف منقلب اونجا دو حالت داشت اگر در حرف چارم به بالا قرار میگفت تبدیل بیا میشد در جمع مؤنث سالم تبدیل بیا میشه میشه فتح ویات اگر چه حرفی بود؟ اصلش واق بود درده موانه سالم به واق برمیگرده اصوات اگر یایی بود بیا برمیگرده رحایات چیز دیگه نیدی در این